فاتحهی چه آمدی بر سر خستهی بخوان، لب به گشا که می دهد لعل لبت به مرده جان آنکه که به پرسش آمد و فاتحه خواند و می گو نفسی که روح را می کنم از پیش روان ای که طبیب خستهی روی زبان من ببین که و دود سینم بار دل است بر زبان گر چ تبسخون من کرد ز مهر گرم و رفت همچو تبم رود آتش مهر از و سخان گر چ تبسخون من کرد ز مهر و رفت همچو تبم نمیرود آتش مهر از و سخان حال دلم ز خال تو هست در آتش شوطن چشم مزند دو چشم تو خسته خستش و دستون آتوان باز نشان حرارتم زابد و دیده و ببین نبز مرا که می دهد هیچ زندگی نشان آنکه مدام شیشه هم از پی عیش داده است شیشه هم از چه می برد پیش طبیب هر زمان حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم هر که طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان